بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله اللذی جعلن آمن المتمسکیم به ولایت مولان و امیر المومنین عرض سلام و و احترام دارم خدمت شما خب ما در دو جلسه گذشته خورده در مورد مسیر صحبت کردیم و سراتی که در قرآن با عنوان مسیر هدایت در رسیدن به هدایت بحث شده و تبیین شده خورده صحبت کردیم ما را به انلازه وست و سواد خودمون رسیدیم به, این به محبت که اون داشته ماست که انشاءالله مطمئنن با خودم میبریمش و قرار تبدیل بشه به مودت یعنی محبتی که به عمل برسه محبت در نتیجه دو مسئله به مودت تبدیل میشه اولش معرفت، اصلا محبت چجوری به وجود میاد شناختی پیدا میکنه خب بعد محبت به وجود میاد یعنی محبت به امام بدون معرفت امام امکان نداره یعنی باید یه معرفتی به وجود بیاد شناختی به وجود بیاد میگم ما برای چی اصلا ما حضرت علی دوست داشته باشیم برای چی مثلا از از زهرا دوست داشته باشیم برای چی امام حسین رو دوست داشته باشم خب یه سری شاخصه ها داره دیگه وقتی اون شناخت به وجود میاد ببینید مثلا الله همه از هر دین نه یعنی یکی از بچه‌ها اومدم قبل از جلسه میگه واه من تو تاکسی با باصی یه صحبت می‌کردم گفتم من حرم امام رضا میرم نمیدونم خرج بدیم. شرکت میکنیم برای چی برای اینکه اون یه سری شاخصه ها تو وجودش خدا گذاشته به عنوان فطرت داستان امام حسینو که میشنبه مجبوره اصلا احترام بذاره برا امام سوای دینا مجبور احترام بذاره همونطور که ما بر بزرگان احترام میذاریم ولی بعد دین خودمون نباشه درسته میگیم آقا یک نفری که در راه هدفش می‌جنگه اصن سوا اینکه حالا بحثمون نیست که هدفش چی هست این آدم آدم متعهدیه خب باید حواسم در واقع باشه خب این محبت در اصل شناخت این شناخته یه سری, گزاره ها داره... یه سری گیرنده های داخلی داره اکش اکوش هم بگید یه سری های داخلی داره این گیرنده ها... چون اثرش هست ما میفهمیم یعنی نگاه کنید شما فرض بکنید وقتی امواج توی آسمون هستش داره توی فضا هست گیرنده خاص اون امواجه میگیره. میگنم صدای گردش کره زمین یه صدای عجیقریبی درست میکنه. اما ماها نمیشنیم. اگه میشنیدیم میمریم میگن ما چرم می میشدیم این گیرنداش رو ما نشده یا صدای پاره شدن های زمین رو یا رو همغلتیدن ما نمیشنیم اما پرنده میشنود برای هم قبل زلزله رو می اون صدا اذیتششون میگن این در ما وجود داره و در رفتاری که همه چیز دنیا طرف کافره. ببین تو غزه دارن آدم میکشن چی میشه؟ شاکی میشه. کافره اصلا ریخته تو خیابون تو جنگ 22 روز غزه، کافر به تو خیابون. این گیرنده وجود داره. محبت اصلا شناخت دو وجود میاد. نکته دوم که از محبت میگم به مودت برسین، یعنی به عمل برسه، اول اون شناخت اون فرده، دوم براعته یعنی اگر میخواین مودت داشته باشه، براءت داشته باشه. ببین جاده اول شناخت راهه. دوم شناخت بیراهه درسته بیراهه مهمه یعنی گاردار رو بشنوسی بگی بیرونی نبد برم اومیشه به راحتی من تبریم جویم از تمام این مساحت زمین به غیر از همین قسمتی که تو عنوان جاده راه بزرگ راه هر چیزی رو اسمش گذاشتی اگر یک نفری همه چیز شد محبت من همه زمینو دوست دارم این به بیراهه میره اونم محبتش اصلا از از محبت بیخودیه می... الان اخیرم تو این فرقه های جدید این عرفان های نوزهور این حرف خیلی زیاده همه خوبه. هم. اینطور نیست همه خوب این هم درسته؟ براعت نداره به خاطر همین تولا یا تولی باید در کنار تبره یا تبری باشه سلمون لمن سالمکم من لمن هارمکم من با هر چی که بیرون این گارد وجود داره مشکل دارم برای تو الله و الیکم من هم من اون ها به توی هدف و توی راه ببینید اینجا هدف خداست اشتما نکنید هدف خداست امام خود راهه یعنی شما در راه حرکت میکنید شما در وجود امام هی به هدف بیشتر نزدیکتر میشید یعنی اونجوری نیست که امامو جلو بایست باشید بیا اصلا تو خود امامی الان بیشتر توضیح میدم قشنگ مطلب جا میفته انشاءالله من ما تولم یعرف امام زمانه مات تمیتتن جاهلیه فلذا اگر کسی جاده شناسی خوب بلد نباشه قطعا گمراه میشه مات جاهلیه باید بشه و با تبعیت کنه قبول داشته و اون قوانینش هم بپذیره میگه این روایتو بر... کتاب بردارن اهل سنت اونم هست و تو صحیتنی با سند صحیح میگن هر کس بمیرد و بیعت امامی برگردنش نباشه به مرگ جاهلیت مورده بیعت دیگه میشه چی یعنی پذیرفتن اون قوانین یعنی هم اینو دارن هم یکی رو داره هر دو رو داره ما توی زیارتاش رو چند تا خواسته داریم خیلی این خواسته ها قشنگن خ... مثلا هیفم میاد یه نفر زیارتاش رو بخونه اینا نفهمه ولی الحمدلله خودم سالهاس مداومت به زیارتاش رو دارم هر شب می خونم. تو بدون صد لاله صد و سلامش من آدیش نمازشم می خونم نشستم می خونم نمازشو غیرم اصلا زمان نمی بره حالا آره جاله من خدمت رو عرض می‌کنم این چ از انا حفظ شده یعنی سخت زیارت عاشورا فرازهای شبی وهام داره سخت حفظ شدهش چه با اصلا یه جوری این خیلی عجیبه این زیارت نامه به جرأت میگم حالا من اون سواد اندک خودم دو تا زیارت نامه میخوام بگم اسم ببرم که واقعا عمیق آدم گیج میشه توش یکی جامعه کبیره یعنی مشخصه اون چسی که این متن رو گفته الهی بوده در این شکی وجود نداره چون سند نزراتوش رو میدن دیگه میرسه به یعنی سلسله میرسه به خود خدا میگن قال الله اصلا خیلی جوره حالا من یه چه میفهمم حالا تو هم سواد اندکی خودم یه چیزاشو خدمتتون عرض کنم یکی از این خواسته ها اینه میگه اکرم منی به معرفت کم میبینی اصلا ما به چی برسیم به معرفت است. یعنی اصلا نمیتونی از محبت بدون معرفت چجور میخواد به وجود بیاد به معرفت کن و معرفت اولیاه کن. من به شناخت شما و شناخت کیا دوستاتون رو میرسم عجب یعنی شما امام زمان تو بخواد بشناسی با امام زمانیارم بشناسی این خیلی قشنگه من برای همین میگم بریم عباس بشناسیم علی اکبر بشناسیم زینب علیه السلام بشناسیم برای چی؟ برای اینکه اینا امام زمانی های خودن یعنی شما تو این راه داری می‌ری یه سری چی داری همراه داری اونا رو باید بشناسی این کمکت میکنه توی راه رفتن سفر تنهایی چیه سخته خطرناکه وقتی همسفر داری خوبه اما اگر همسفرت بد باشه چی خیلی بد تا سفر با تو چنان بود و هزار بی و چنین آنچنان بر هزار از همسفرانم هم که مپورت خوب او اصلا اونجا برهزر می‌شی اون هم سفرم باید بشنسیش یعنی جالب حب به امام حب به کسایی که حب به امام دارم میاره اما من تجربه کردم با کسایی که سفر زیارتی میری چنان محبتشون تو دلت میشینه که اصلا یادت نمیره بعد شمخ میبینیشون تو بغلش کنی اصلا روبوسی جواب نمیده باید بگیری بغلش کنی اونق به اونق معانقه بد بکنی اصلا خیلی عجیبه ها. با طرف عروسی رفتی، با طرف شمال رفتی گشتی، همش از اولیه آخرت خنده بوده اینجا رفتی گریه کری، سختی کشیدی اما عجیب دلت تنگ میشه برای من اثرش رو دیدم خودم و اکتر من به معرفت کن و معرفت اولیا کن و رزقنل هر روزیم کنی روزیه چی؟ مرحله اول ما دید. همه زمین رو میشناسم حالا میخوای بگی همه منهای اینا تا راه معنوم بشه. مثلا غن البراعه من اعداؤکم. یکی باشه مثلا شما دلت با این طرف دعوا میکنی بگی من تو رو خیلی دوستت دارم ها اما اونم دوستش داره. یا باید دوستش دارم. سر سر دوست دارم دوستش دارم. چرا دوست دوستش مگه صد سال دوست داشته بشی؟ چرا کمکم نکرد میگم من خب دوستش نمیشه که یکی از با... چیزایی که بچه ها... بچه ها توی خونه بغصه بچه ها شیر بشی خیلی با هم دعوام میکنن. وقتی دعوا میکنن کنن خب همیشه بحثشون سر چیه به مامان و بابا میگن چی؟ تو چرا در مورد اون تو چرا در مورد؟ دعوا هم دعوا می بعد میگه که تو چرا من منو دوست داری باید اونم دعوش کنی دیدید بعد اونم دعوش کنی یعنی ذات آدم به راحتی رو میفهمه ولی یه بچه کوچیکه فطرتا به راحتی درک می کنه اصلا میفهمه کار رو احمقانه هست اینا رو که کنار هم گذاشتی یعنی یک معرفت ما و معرفت اولیا کن و, و, برا... و رزاقن براعت من اعدای کن هم جمع بکنی میشه چی؟ و این یجعلنی معکم فه دنیا ول آخره اون وقت تو دنیا آخرت به شما میرسم دیگه میری تو راه میری چی میشی؟ میشی خود راه تو هم میشی راه دیگه هیچ وقت گم نمی کنه. چرا؟ تو خود راهی مگه راه خودتو گم میکنه اصلا سراتا میدونید یعنی چی سراد سراد از سراتا میاد سراتا یعنی بلیدن اینو دو جور عرب معنی کرده میگن راه آدمو میبل از دور چی نگاه میکنین این آروم آروم میره طرف کیپ میشه انگار راه قورتش داد بریا اینم میگن که این راههای مال رو وقت وقتی سوار شطور بودن این حسو زمان که سوار اتوبوس بشی بهتون دست بده جلو اتوبوس بشنید احساس کنه اتوبوس از ذی دهن داره داره جا میده اصلا جاده آدم باید قورت بده. باید ببلعدت. این لفظ زبان عربی زبان عجیب قریبیه. خیلی عجیبه. به معنی واقعی کلمه کاملتن این زبان دنیاست. همه چیش. برای همین قرآنی به این زبان آورد لسان اهل است اون دنیا این تو بهش به عربی صحبت میکنم. ما اونجا قرار عربی صحبت میکنم. شما نمیدنم. تو, تو بحث معرفت امام اینو دقت کنی پس این باید حتما حواستان باشه اینو یادتون بمونه یعنی معکم فه دنیا ول آخره اون وقت تو دنیا آخره با شما میشه خود راه این شما رو یاده یه چیزی می نوزه اللهم محیای و مماتی ممات مماتم مماتم ببین این یه فراز از زیاره تا شورا. اون یه فراز دیگه کاملا با همه چو جوره اون به یه بیان دیگه داره میگه, بخاطر هم میگه کسی گفته طبیعی آدم عادی نیست ما نمیتونیم جهر حرف بزن امکان نداره. تو بحث معرفت امام بعضی اشتباه میکنم فهم کنم امام فقط آدرس میده اصلا امام آدرس نمیده امام خودش خودش آدرسه ببین تو یه ما شد یه آدرس میده برو فلانجا یادت میره چیم میکنی ای بابا چ ننمیشتم آدرس اما کسی از آدرس چیه تو دستشه تو دستشه هی نگاه میکنه هرجوری میکنه هی نگاه میکنه یعنی دائم تو با امامی در امامی که تو رشد میکنی در وجود امام تو سلسله مراتبو میای بالا پله ها رو میای بالا نه اینکه آقا امام گفته اینجوری برید اگه اونجوری باشه اصلا ما به زور امام زمان نیازی نداریم آقا قرآن گفته رسید روایت هم همینجوری رو زندگی کنید بسم الله پس چیه ندو بکردنمون چیه هزار روز سر کله زدنمون چیه که ما میخوایم برسیم به امام زمان نه اصلا نمیشه بدون امام این مسیر رو رفت. باید ببین چکار رو کنی؟ شما یه سری همراهان داری، خب؟ یه امام، یعنی همتون با هم با امام با هم باید. برید. همراهان این راه چیان؟ ما حالا با این برگرم جلسه قبلی. جلسه اول. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم یه زالین داره راه گم کرن یه مغضوب این داره. اینا کیان؟ راهو که رانندگیشون بده. ما از اینا نباشیم. درسته؟ میشه چی عليهم عليهم چی سوره 69 مع الله عليهم حالا جالبتون بگم ببینید خیلی قشنگ تو بخون زیل این آیات چی نوشته میگه یعنی علی تو انعمت عليهم یعنی موسی درستو یعنی علی عليهم یعنی موسی این همراهان شما تو این راه کیان قرآن میگه ان عمل الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدا والصالحین امام بزرگ همه اینا سک نکنه امام صدیقه نه امام بزرگسه صدیق اکبره امام شهید سید الشهداست اونا اگه شهیدن یه رنگ و بوی از شهادت دارن بزرگ شهدا چیه؟ تو یان غرقه بخونی که بزرگ شهدایی ای. تو عزیز دل زهرات و حسین خدایی. امام این رنگ و بوی امامو گرفتن. در شهید بودن. به شهود رسیدن. در صداقت و صدیق بودن. یعنی حتی نبیین هم همراهان راهن. اشتباه نکنید همراهان این راهن. خیلی عجیبه. من نبیین؟ میدونیدیگه ما یه نبی داریم. یا رسول داریم رسول از نبی مرتبه بالاتر داره یعنی فرستاده شده است با هدف ما پیغمبر داشتیم فقط پیغمبر خانواده خودش بود 10 نفر 15 نفر مثلا این خانواده بود جمعیت مثلا 20 نفر نه 100 نفر داشتیم 120 24 هزار تا پیغمبر روایت داریم حتی ای چیز تو ذهن من هست حضور زن ندارم یعنی پیامبر داشتیم برای یه نفر پیغمبر حالا برای... چون حضور زن مطمئن نیستم ولن... میگم رو گوشه باشه. پس قرآن یا امام آدرس نیستن. میگی قرآن آدرسه. نه. قرآن باید تو قرآن ترش کنی، در امام روش کنی چون راه امامه تو راه باید بری. به من ببینم راه کی شروع میشه؟ همون اول که تو پاتو میذاری توش. تموم میشه؟ همون تو میری ازش بیرون. گرفتی چیشو؟ تو میری ازش بیرون اون تموم نمیشه که مقصد کجاست؟ الالله الله. پس امام تا کجا باید بره؟ الالله الله. یعنی تونیم تو ببینی راه جد باید با امام با همدیگه ببینید در همین تو قرآن ببینید تو قرآن در مورد قرآن ما داریم نور ببینید نور ادامه داره که قرآن میزه خیلی قشنگه نور ادامه داره میگه قرآن حکمته قرآن سراته قرآن حیه قرآن شهیده آجا قورایم کاغزا همین نوشته بله در مورد امام هم همینو داریم ما یه بحث تجلی داریم یه بحث تجاویی داریم ببین قطره مثلا فرض یه دونه بحث که میاد روی زمین این تجافیه میدونین چی یعنی اونجا آب منجمد میشه میشه تگرگ یا بخار میشه بارون اون واحد آب میاد پایین ببینین تجافی یعنی بریده بریده است وقتی اومد پایین دیگه بالا بگید نیست اما قرآن وقتی میگه ان انزلناه فی لیله میگه مثل تنابه تنابا میندازن سرش بالا تش رو زمینه درسته این دیگه تجافی نیست این تجلیه در مورد امام امام تجلیه یعنی تمومی نره تو اصلا تو کربلا لحظه های وداع با عبا عبدالله سخت بوده برای چی؟ برای که گیر میکردن. میخواد بره علالله امامو چیکار کنم؟ ما همراهیم. او جلوی من ایستاده چه جلوی؟ دلکندنه سخته. متوجه چی میگم؟ یعنی جسم امامم نمیتونه جسم امام دل بکنه. به خاطر هم چیز عجیب به شما بگم. میبینید در تمام موارد لمس دارید شما کربلا. یعنی به آغوش کشیده حضرت اون فرد رو هرچی این دلچندن سخت بوده اون به آغوش کشیدن هم بوده اصلا اون نمی فهمه این لمس یعنی چی نمی فهمه این مست یعنی چی حضرت یعقوب این آیه قرآنه من نمی فهمه این آیه رو میخونن یا نمیخونن آیه قرآنه پیرهن یوسف و تا به صورتش چه چشاش خوب نشد یعنی این که میری حرم, زر... حرم امامو دوست داری دستتو بهمالی به این حس حس خوبیه دست خودت نیست دوست داری به آغوش بکشی دوست داری بگیری با تمام قدرت فشار بدون زری یکی از که خیلی وقت ندیده چهجوری به آغوش میکشیش؟ چرا هرچی بیشتر ندیدی حبت بیشتر شده میلت به اون فرد بیشتر شده به آغوش کشیدن بیشتره این تو ذات توه این تو ذات تو اگر علی اکبر میره به میدان نمیتونه شهید شه. <تصفيق> چرا؟ نمیتونه یه بار میره به میدان 120 نفرم میکشه تو مقاتل اومده برمیگرده باید بمیگه الاتشو قد قتلنی او کشش از اومد اما تو رو چه کنم امام تو رو چه کنم برای توضیح میدم کبابدلله چه کار میکنه و علی اکبر چی میشه؟ میشه خود کربلا شاعر قشنگو گفت هر جا نگاه کردم علی اکبر دیدم خیلی عجیب خیلی عجیبه العتشو قد قتلنی آب نمیخواسته نمیدونسته آب نیست خبر نداشته خیمهگاه بی آبه نه آتش عشق عشق به کی به خدا برای همین حضرت فرمود رحایش کنید این زنای حرم محارمش دامنش رو گرفت رو گفتن نرو او هم دامن کشان رفت خیلی زیبا رفت دامنش رو گفتن نرو هزه فرمود ولش کنید هاهاها ممسوس فی ذات الله گفت این به مرس ذات خدا رسیده نمیتونید نگرش دارید این دعواش بیشوند یعنی با امام میاد و میبینید با امام میاد تا محیای محیا محمد و مماتی ممات محمد و مماتش هم باید اثبات کنید بزن مهرشو امام همه زندگیش میشه امامی همه زندگیش میشه حسینی اصلا میشه جزی از امام حسین و تو شهدای های کربلا علی اکبر چسبیده به امام حسینه ششگوشه برای چی ششگوشه دوتا زریع کنار هم بودن. خیلی نزدیک به هم. مردم میافتن به این زریع مثلا زیارت بکنن. پشتشون به اون یکی زریع میشد. بد بود. دوتا رو بهم چسبوندن. شد شش گوشه. علی علیه در آغوش امام زمانش دفن شده. اصلا تو سینه ی عبا عبدالله عزد علی ازخر. شش ماهش امام سجاد دفن میکرد. میدونست چی کار برد بکنه. امام معصوم میدونست چی کار اصلا کربلا هر گوشه‌ش رو شما نگاه کنی یه شاهکاریش اصلا نمیتونی ببین انقدرم جوره اصلا نمیتونی دست به جایش بزنی بعد واش فقط لذت ببرید تماشا کنید خیلی چیز دارم آدم میگیره نمیتونه بگه نمیتونه اصلا به بیان خدا شده نمیتونه بگی خدا شده کلمات رو نمیتونه بگی اندیشم بچه‌ها گفتم یه نکته میخوام در مورد کربلا بگم در مورد ابوالدلا نمیدونم بگم یا نگم ننگ که خودی نکره بگم جم جم خوبی نیستا نه بحثم سنه بود که من میتونم با این لغات این انتقال بدم یا نه؟ نمیتونی. مولانا میگه من مسد لال خواب دیده. تو خواب مست و لال عالم همه کرد. من چجره میخوام هم بزنم؟ چجوری انتقال پایان باید صورت بگیره؟ تو همراهی با امام شما وقتی باهاش میری ببین چی میشه؟ هر بار یه هجابی کنار میشه. تو هی به چی میگم تو هی امامتر میشی هی به خلیفت اللهی نزدیکتر میشی هی در اون راه غرق میشی هی بیشتر استاد راه میشی راهش هم پرپیت و خمه حفظ نمیتونی بکنی یه میرسی میگه اینجا باید دست راست اینجا ببیشیم دست چپ، او بلده چون خود راهه تو گام بر میداری در وجود امام بالا میری بحثی که وجود داره همینه که چی هر لحظه حجابی کنار میره تو یک مفهوم نابی از عبودیت و خدا درک میکنی هر لحظه که پیش میری با امام یه مفهوم جدی، هجاب میره کنار یه مفهوم جدید از عبودیت میفهمی گفته عبودیت همون سرات مستقیم بود دیگه یه مفهوم شیرینی خاص طرف میبینی هر نمازش با نماز قبلش فرق میکنه تهم نداره ها خوشگلی لذت اونجاست الله توی این دنیا بارها تو سخنرانی گفتم ما اصلا لذت ندونیم تو این دنیا همه چی رفع علمه یعنی یه سختی بر شما حادث میشه اون رفع میکنه خوشت میاد فکر میکنی لذت بردی یعنی اول باباتو در میارن بعد اون سختی میگه کنار میگه آخ چه کیفی داد مثل کیه مثل کسی که تشنشه اول تشنش میشه پدرش در میاد آب میخوره میگه به اما همون آب دادن ادامه بده چی میشه شکنجه میشه که شگنجایی آب میدم به زور به نفر گوش نشه همه چی میل جنسی همه چی اصلا یعنی روی زمین ما لذت نداریم رفع علم داریم یه جا هست شما فقط لذت رو احساس میکنی که هرچی بیشتر میدودن بیشتر میخوایی او همینجاست این تنها جای ملکوتیس رو ملک زمین که وقتی با امام میریم میری اون لذت رو نگاه کن وقتی لذتی که ببین شما هیات طرف. سینه زنی میکنه گریه میکنه میره بیرون خوشحاله میره لحظ خدا بر چیتون خدا آره چیتون میخواد خراب بکنه از آدارتون اما اون شادی که به دلش اومده از چیه شاید پسترین صورت اون حقیقتی که تو درک کردی میخواد بخندی طرف اینکان ننشه کرده رفته هیا چی شده به یه سرمستی رسیده به شادی رسیده برای چی برای اینکه هر لب... یه خورده میره یه خود پاک میشون، هجابه کنار میره یه نوری به این دل میتابه احساس شیرینی بهش دست میده هر کدومم تجربه جدیده اما تجربه‌های چی تجربه های جسمی و قریزی تکرار شدن نیست. یعنی هر بار سیر شدن هر بار سیراب شدن هر بار ارضای میل جنسی اما این اونجوری نیست هر چی بهت بیشتر میدن اگه تو مسیر بیای بیشتر عشق میکنی تم نداره خوشگلین لذت اینه اصلا بهش میگن نعمتاش همین جوریه بی انتهاست شبه این نعمت روی زمین میشه به خاطر هم. وقتی ولایت امیران مومنو داره مثال میزنه میگه امروز نعمتم رو شما تمام کردم سر تنابه دادم دستتون حالا بیاید بیاید بالا منتها همراه با امام شما در مورد امیران چی میگم یه علیون معل و الحق مع علی با هم آمیختست و حق و میخوای همیجی تو مسیر حق بری باید دائم علی کنارت باشه پیش بری و اینه نمیتونی که امام بالابره با خودش بالا میبرده مالک امیر المامی داشتن با سپاهشون رد میشن کنار زارم بابل رد میشن خب بابل هم میدونی دیگه یه شهری بودی که ادهی در یه برجی ساختن میخواستن به خدا برسن خدا عذابی نازل کرد آره ما نمرود نقش و دا افرادی کاری ندارم خلاصه یه قومی بودن اونجا گناهکار بودن و با عذاب الهی وقت نماز شد اینا دونه دونه شروع کردن نماز خوندن امیرالمومنین سوار بر اسبش میرفت دونه دونه همینجوری وایساده نماز میخوندن میخونن سری رو میگرفتن به قول به تاز میومدن میرستن به امیرالمومنین زمینشون خود شورهزار بود امیرالمومنین نخوند نماز رفت جلو رفت کردن منطقه رو تنها چسی که با مولا مونده بود و نمازو نخون با مولا مالک بود مال کشتن گفتش که تو چرا نماز نخون حتی بعضی میگن رد و شمس کردن میرن اون موقع یعنی برگردون حت. حالا ما با اینش کار نداری با همینش کن گفت تو چرا نماز نخون شما نخون گفت بر چه این حرف میزنی گفت من از رسول خدا فقط یه چیزی تو ذهنم علی یوم مع الحق معل، علی هر کاری تو میکنی حقه را میری منو برآویم هم همون کاری که سلمان گوشدار همینا می‌گن نماز تویی به خاطر هم امیر المومنی در وصف مالک گفت مالک برای من همچون علی برای محمد هست ببینید چه مقام پیدا که مالکشته. هشته یه دی... دیگه ما یه روایت داریم خدمت شما عرض بکنم حضرت امیر به مالک میگه میدونی چرا دوستت دارم اول میگه ده نفر مثل تو بعد میگه پنی نفر مثل تو یکش مثل خودت خب میگه چرا میگه خوب براعتی نسبت دوشمنوی ما داری درموند حضرت عباس و حضرت علی اکبر نقل شده وقتی اسم دشمنان اهل بیت جلوی میآوردی، می آوردی اخمای عباس میرفت رفت تو هم دست خودش نبود یعنی براعت تو زادشه این یه راننده تا درر رو می بینه می این طرف تا یه ماشین می سری سریع می گیره حرفیه یعنی بری جلو تو اون سرعت بالا تصادف یعنی سری میگیریم گیره هم. یعنی اصلا اسمشون برده می مثلا اخمارو میکشید تو هم حضرت عباس دعای دیگه ای که حالا اینم بذار قبلش بگم اصلا این میشه که آدم وقتی توی امام حل میشه همینطور داره باش رشد پیدا میکنه خب خودش هم میشه مصباح اصلا در مورد امام حسین چی گفتن ایندال حسین مصباح و لدا و نجات شما با کشتی نجات چجوریه بچ کار کنید تا نجات داشته بشید همیشه تو کشتی باشی. درسته نه؟ باید همیشه همراهش باشید. نگه آقا فعلا این رد کنین بپرم تو دریا. موج اده خفت میکنه. هر لحظه به هم نگاه کنی مردم میومدان، تو امیرالمومنین میومدند، تو امام حسین اومد، امام سجادت قبول نکردن، زیدی شدن. خب رفتن. چه موجب غرق شدن. تو باید با مسیر امامت چکار بکنی؟ همینطوری بیای فلزا اون کسی که اصلا آقا رسول الله قبول ندارم به مقصد نرسیده اون کسی که تا امام رضا اومده نکرده قبولن شده. چی؟ تا امام اومده اونم به مقصد نرسیده اصلا شما میدید حرمان موسیم بحریه ها رو میبینی این اینا رو تو کازمه نمیبینیشون دیگه فقط نجف کربلا خیلی هم توپه تو کار سنگ های تزینی و اینجور چیزا هستن هستن خیلی هم دلم به حالشون می‌سوزه. همین آخرین باری که خدمت شما عرض بکنم بنده مشرف شده بودم نجف و اشرف اونجا نشسته بودیم یکی که اینا پدر بزرگه و پسر و نوه‌ش. چنان هم بودن دو... کتاب دعاهای مخصوص خودشون دارن. چرا چون دعاهای ما وقتی حتی زیارت اگر امیر باشه اسم تمام امامات تا دوازدهم میاد اون اینا قبول ندارن. خب واقعا دلم بالاشو میسوخت یعنی با تمام میل دوست داشتم بحثی رو شروع کنم من چه جوری ببینم یه چیزی بفهمونم نه زبون عمو میفهمیم نه چیکار کنم دلم میسوخت تو تا اینجا اومدی زدی جاته خاک خراب کردی تو اون دو بزرگ تاریخ دو راهی علی رو رد کردی اینجا خراب کردی خیلی داور واقعا دعای دیگه چیه که مرتبط با بحثه ببین دعای اولی چیشون معرفت من اعدائكم شدی فدنی والاخره بریم دوای بعد ببینیم چیه میگه لقد عزمنا مصابی بک خیلی عجیبا خوب دقت کنید فسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت اینجا یه چیزی میخوای اون مصیبت عثمان رو میگه یرزقنی طلب سارک درسته بر من روزی کن طلب خون تو را ای حسین درست شد خدا بر من روزی کند رزقم بکنه اونجا رزق براعته بود اصلا ببین لفظ رزق استفاده میکن با اون براعت از دشمنه دشمنم شده براعت باز اونم رزقه خیلی جالبه ها یعنی این لطف خدا سویه. فضل خدا به کسی میده بعد طلبه سارد مع امامن منصور یه جا دیگه هم اشاره به امام زمان شد زیاره تا شروع. درسته ما امامان خود ظاهر ناطق به حق میگفت قبلش چیه میگه ان یو به مصابی بکم اونجا میگه مصابی بگی اش مصابی رو ببینید میاد سخری ذرات رو رمز کردن برای همین خیلی شبیه همه فراز هاش اما نکشته تو اینا است ان یوتی یعنی اینجا ما یه دو آ داریم میگه عطا کن به من بده به مصابی بکم افضل ما یوتی مصابم به مصیبته افضل مصیبت افضل اون اعتا در مورد مصیبت اعتا اصلا خیلی موقع خودم این عجب مصیبتی ما ما یعنی چی؟ الان اینو خدمت عرض میکنم این همون نکته است که میگم خودم بگم یا نگم این بود مصیبت ما ها و اعظم رضیتها فلسلام و فی جمعی سماواته ولعرض اینجا یه نکته خیلی خیلی عجیب وجود داره خب اینو داشته باشه من برای اینو بتونام حلش بکنم من برمیگردم یه فراز دیگه از زیارت آشوران میخونم زیارت فراز اول که امام منصور بود قبلش گفتی طلب سارک اونجا که فراز دوم که ان یرزوغنی طلب ساری من امام هدن ظاهر ناطقم به لحق چی شد اونجا گفت روزیم کن طلب خون تو را توسط با همراه روح امام منصور با امام منصور باز معیته خب با امام پیروز یعنی آقا زمان بگیرم. تو فراز بعدی تو زیارت عاشورا پیش میری شما رشد می‌کنی یعنی فرازهای زیارت و آشورا اینجوری نیست رشدت میده اینجا یه چیزی عوض شد امام زمانه که همون منصور شد خودن ظاهر ناطق رو شد دو یعنی ظاهرا ظهور خب اما چه اتفاقی هم افتاد میگه ان یرزق انی طلبه ساری قبلش میگفت سارک حالا میگه ساری چی شده دیگه اصلا خونه تو نیستی خونه منه حیله قشنگه اصلا تو زیارت آشیرات دیدی چقدر زمیرا به هم میریزه ساری بعد نوشته ساری کم داخل پرندگیز کم هم گذاشته بالاخره خون من یا خونه شما میگه تا اگه بفهمی تو باید خون خواهی خونه حسینو بکنی چرا؟ چون تو هم تو راه بودی تو با امام باید تو حل بکنی خودت تو, تو امام تو با امام میخوای روش کنی بیای بالا. از سارک تو فراز قبلی رشد میکنیم میای بالا میگه ساری و علل الوه جلسه قبل گفتیم حلت فناک حل شده اینجا خون خودمه اصلا من شاکیم خدایا امام حسین ببخشه من نمیبخشم من شاکیم اینجا حالا عجیبه سار الله ساری سا تک چی شد من تو امام خدا هر از یه بار خون نسبت میده به خدا سار الله یه بار میگی سار امام حسین که یه بار میگی ساره من یه بار میگی ساری کم همون مجموعه همراهان امامم هم میگه چی شد همش یکی یعنی تو در امامی حل میشی که میخوا به رسوند به الله به مقام قرب الهی استغفر الله اینا چه اینجوری بگیم خدا بشی با تمام اون چیزهایی که داره ها شرکتوش برداشت نکنه نه برسیم خدایی بشیم ها این بهتره خدایی بشی نور خدا تو دلمون بتابه این خیلی قشنگه ببین عزیز دلم من فا این چیه مصیبتا رو علیم بلا برای کافر عذابه خدایی کافر رو بلا براش فرستاده داره عذابش میکنه برای مؤمن عذاب نیست برای مؤمن دو حالت داره یا کفاره گناهشه خب یا ترفیع درجه است یا کفاره گناهاشه یه غلطی کرده اشتباهی کرده همین دیشب بود یا پریشب بود عرض خدمتون خدمتتون گفتیم خدا پاکش میکنه درسته میگم میرسونش بالا این باید چکار بکنه پاک بشه تا برسه تو این مسیر بتونه بمونه این مسیر مسیر رجس نیست گفتیم رجس و خوک و اون تمام پلیدی ها بیرون این جاده است بول و همه بیرونه قرآنم خوب اشاره کرده به اینا اینجا تو جای پاکانه جای صدیقینه جای نبیینه شهده های پس چیه؟ بریم بعدی ترفیه درجه ترفیه درجه هم تقریبا به تون بگیم تو بلاهایی که من شما ها میبینیم ترفیه درجه نداریم یعنی جان گناه میکنیم این بلاها برای چیه؟ کفاره اون گناه هست ترفیه درجه نداریم یه نکته دیگم میگه مصیبت مصیبت از اصابت میاد اصابت یعنی برخورد هدفمند تصادف یعنی برخورد غیر هدفمند دو تا ماشین میزنم، به هم بقا. بنا نداشتم بزنن به هم دیگه ایشون آدم عاقل الکسیم تصادف کنه مصیبت نه یک برخورد که چیه هدفمند میخوره به این یعنی چی اینو من بعد برای اینکه بگید بفهمید که بابا قرآن چه جوری آورده گفته خود خدا چی میگه ما قرار خدایی باشیم ما اصلا شرط خلقتمون چی بوده عبودیت ما خلق الجن والانس الا لعبود. احسن خب بعد آیه بعدی که سوره یاسین بود چی گفت؟ گفت که تو سرات مستقیم باشید. ان اعبودونی الا ل اینجا ان اعبودونی همون عبودیت بریم. هزا صراط مستقیم. همین امامته. فی امام مبین شروع از سوره یاسین هم امام مبین داره دیگه. خب میگه امام مبین است. چون امام آشکاره. که این امام واقعیته یعنی کتاب. فرق نمیکنه کتاب هم امامه ببین امام کتاب معینه کتاب امام صفحه صفحه شده است یکی هم این اینی که نوزو بالله نوزو بالله بلا تشبیه در مسئل مناقشه نکنید این که رفتی تلویزیون خیلی خوب خریدی یک که ناشتی میدن یه کاتالوگ بد میدن درست شد همین یعنی تو اصلا نمیتونی اون بهره برداری بهتر باشه برد با همین. و حضرت رسول هم اینه تارک کفیک و, و مستقل. هم سغله هم وزن. کتاب الله و اترتی، اهل بیتی حتی یردا علیل الحوض بعضی میگه علیل حوض علیل درسته یعنی بر من وارد میشه یعنی باید با هم بیاد. یک شناسه. اصلا تفسیر آیات جهاد امام موسی. تفسیر آیات الماموزی باور. باقر. بهترین نوع تفسیر اما مگه فعل غیر خیرم داره؟ نه. پس هر کاری میکنه چیه؟ درسته. درستا تو قرآنه. در قران رو انجام میده. من میتونم رفتار امیرالمومنین رو بعد از صقیفه دونه دونه آیاهای های قرانشو براتون ببرم. اونجا که سکوتیات چرا؟ اونجایی که بیعت داشتن می‌بردنش این کارو کرد چرا؟ دونه دونه آیه هاشو براتون ببرم. حضرت زهرا قهر کرد دیگه فحجرت فاطمه. واسه اینکه آن اتفاق افتاد، قهر کرد. یعنی با قاسمان خلافت قهر کرد به حضورم نمیفزیر رفته شد خود سعی بخاری نوشته که فحجرت فاطمه فاطمه قهر کرد تا روزی که میگه از دنیا رفت میاد آشتی نبودن خب آیه قرآنه کجا وحجرهم حجرا شامل قرآن قهر کن لا اله الا فتخذ هو فتخذه وکیلا کی وکیل خودت بگیر الله لا اله الا الله لا اله الا فتخذ هو فتخذه وکیل allele noksem dare un ke هرگز کردیم قبلا که امیران فرمود انا لا اله الا هو ابجد علی صد و ده لا اله الا هم ابجدش میشه صد ده حالا این رو اینجوری بخون لا اله الا هو فتخز هو وکیلا کی وکیلت باشه بسطه علی ببین من از از درد آیات قرآن اجرا کنم تمام شده ماها نگاه کنید ماها این بلاهایی که به اون میرسه قرآن این چی میگه میگه من اینا رو به شما دادم، به بچه داده، بیت خونه داده، بیت خوشگلی داده، به صدای قشنگ داده، به عوش داده، به همه نعمت‌های الهی میشه ده سال عمر صحبت کنه. والا اگر هم بخواد بشمرید بگید، نمیتونید دیگه، نمیشه. اینا رو برای چی داده؟ بگید. برای تو سرات مستقیم بودن، اصلا خلقت کردی اینا ل... منظومات خلقت دیگه، برای تو صراط مستقیم بودن، رفته خرجشی چی کردی. چیز دیگه. چیکارش میکنه؟ چون مؤمنی در اونها بلا قرار میده. که بفهمی باد خرج امام زمان میگه یعنی اگر کسی تمام زندگیشو وقف مسیر و عبودیت بکنه بلایی به اون میرسه ما فهمی گم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله مثلا خدا مثلا بعضی از مثلا نعوذ بالله عقدیه میخواد یه سری خیرکیو بگیره نه برای همین ما چی میگه میگه لنبلواکم بشیئ من الخوف و ونقص من الاموال والانفس والثمرات لنبلواکم میگه میخوام بلا بگیردتون به چی؟ از دست دادن اینا میگه بچه از دست بدی تو باید بچه تو وقف ممزمان میکردی نکردی خوب به فرزن پیدا کردی با همین نیزنمت زمین من این سخنوری رو دادم به تو باید خرج عبودیت خدا میکردی نکردی با همین نیزنمت زمین چرا چون مؤمنی. از, از یه لحظه میگیرتش که میگه اشتباه کردم ببین اینه کسی که یه مثال براتون میذارم شما به بر بچه‌ها برای بچه‌تیدون مداد می‌خرید خیلی مثال خوبیه یه مداد درش مداد رنگی می‌خرید فرده میره تمام دیوارا رو نقاشی کرد چیکار میکنی؟ ازتش میگی تا بفهم این برای نقاشی کردن روی کاغذ وقتی تربیت شد ادب شد دورش پس میدی همه اینا رو به دادم تمام امکانات رو دادم خلیفۃ الله بشی داری گناه می‌کنی به با باهاش آزاد اصلا ببین بلا برای بریدن علاقه به هر چیز حبه جز اونا حب پیدا کنی باطله ولو زن و فرزند باشه اگر در راستای حب اونا باشه ایرادی نداره حبه. به خاطر همین برادر شما اون دنیا نمیشناستید اما برادری که با هم سیغه او خوبت خوندیم میگن اون دنیا میشناستید چون مبنای این برادری چه برادری دینیه اون ژنتیکه نژاده خیلی قشنگه همه چیز اسلام جوره برای همین به تو یاد دادن میگه به عدی انت و امی و اصرتی و مالی همه چیم به فدای تو هستن. برای تو بوده اشتباه اگر کسی که میاد بچهش رو نظر میکنه میگه این بچه من دوستش دارم. میگه چرا؟ میخوام بزرگش سرباز تو باشه. فاریک الله. برکت خدا به اون بچه میده به اون فرسن میده. هوششو رو زیاد میکنه. رشدشو، رو خدمتش رو محفظ کنم داییمون شهید شده. ایشون مادر وقتی زنده بودن یه شبش خیلی مریض میشه میگفت من خواب دیدم خواب عجب غریبی شونیده گفت من من بردن آسمون می گفت من میرفتم بالا این ستاره ها رو میدم من سواد هم نداشه شون سواد قرانی داشت ولی ستاره کنام رد میشد میگه رسیدم دیدم که یه پرده ای برده بودنش میگفت من یه جا بردن باغ خیلی زیبا بود یعنی چیزایی رو دیده بوده دیگه حالا هم قدر و قواره خودش بعد میگه رفتم اونجا دیدم یه پرده ای یه آقای پشت این پرده نشسته یه کاسه شیر برعکس عکس آویزون نمیریزه. آنه یه تعبیر داره ما ها نمی چرا کاسه شیر چرا با... اصلا چه لزومی داریم باشه بعد میگه گفتم که من علی اکبرم اسمشم علی اکبر بود علی اکبرم میگه برگشت گفت مگه نظر ما این بچه رو به دنیا نی بردی گفتم چرا و نظر اهلوی به دنیا بود گفت مال ماه اصلا به تو ربطی نداره. ما خود بعد میگه من برگشتم خب بیدار شدم بیاین بچه تشنج کرا خوب خوب شده بعد از اون آروم آروم رشد این بهتر شد میگه قبلا خیلی لاغر بود آروم آروم گوش به تنش اومد تا 24 سالگی یعنی از اون تاریخ که بچه 5 6 ساله بوده تا 24 سالگی یک بار مریضه میشه یعنی تو کل اون منطقه معروف بود که این اصلا سرمونه نمیخوره این اوریون نمیگیره این سرخک نمیگیرهش مریضی نمیگیره. و رفتم گفتم برداش شد اونم عجب غریبی وقتی نظرش میکنی برای اهل بیت میخرنش وقتی پولتو میذاری برای اهل بیت ببین اون موقع همه چیز میشه اهل بیتی همه چیز میشه ما یه ذکر داریم گفتم ذکر جلی الله اکبر مثلا نماز اذان اقامه الحمدلله سبحان الله یه ذکری داره خفی مثلا لا اله الا بدون صدا بگی کسی نمیفهم چون لواز تکون نمی‌خوره لسانی زبانه یه ذکری داریم ذکر عملی در عمل تو نماز عملیه نگاه به پدر و پدر مادرشون کنی ذکر عملی این عبادته. یه ذکری داری میگه ذکر حالی خیلی عجیبه یعنی در هر حالی باشی داری ذکر میگی در هر حال در هر حال. حتی خوابیدن بله میخوام حتی در قضاای حجر میگه بله حتی در رابطه جنس میگه بله چطور ممکنه همچین چیزی تو غذا خوردن داره نمیگه بله می‌چی؟ میگه اون زمانی که این کارها رو لله انجام میده یعنی چی؟ یعنی می‌گه بخوابم که صبح پاشم انرژی داشته باشم این کارو بکنم. اصلا من دارم ازدواج میکنم که میل جنسیمو ارضا کنم که با فکر آرام شیطان نتونه به سمت من بیاد براتم همزمان کار کنه. بخوابم انرژی بگیرم، غذا بخورم انرژی بگیرم. یعنی چی؟ یعنی همش برای تو اون لحظه‌ای که میگن حال تو و احوال تو را به توصی و توقع امام زمان رسیده است تمام کارات میشه چی؟ عبادت میخوابی داری ذکر میگی همینجوری بعد کنتور مینوزه ثوابه همینجوری عجب بعد ما اینایی که بهمون دادیم نعمت‌ها چقدر خرج امام زمان میکنیم خرج راه میکنیم ها چقدر خرج راه می‌کنیم نگرد می‌داره میدیم یکی دیگه بهونام فش بده به هر بالا سر قبرم دعوا کردن یعنی این اوج اشتباه ها خیلیه اما اگه اون فرزند در راه خدا باشه پولم در راه خدا باشه تربیت درست شده بعد تو همون مسئله چکا میکنه ادامه میده میشه اعمال ماتاخره تو همینطور داره بعد مرگم هم دارم کار میکنم بعد مرگم هم اثرگذارم برای این میشه دیگه چون حال تو به امضای امام زمان رسیده اینون اتفاق اتفاقش که ما باید دنبالش باشیم تو عاشورا باید اینا دست بیاد تو محرمه باید جاشم محرمه به خدا قسم یه چیزی تو محرم میدن که تو محرم ازونش نمیدن میگم چیه بالا برای مؤمن اینه از تمام علایقت ببری ماشین مال توئه که آسایش داشته باشی که در این آسایش خوب بتونی کار بکنی برای اون نه که تو برای ماشین باشی یه خطی روش افتاد شافتاد بگیره ولو دیویست میلیون باشه. باشه. اصلا مبنا این سکه نیست. اینا این مبنا ای شیطانیه. همه چی شد پولی تو آخر و زمان از نشانه های خیلی بارز ما. آخر و زمان اینه که همه چی پولی میشه. همه چی پولی میشه. میگن قوم نوح دوباره برمیگردن. قوم نوح حرف میگن چی همه چی پولی میسنجیدن بخاطر حضرت نوح اومد گفت سلام علیکم من پیغمبرم پول نمیخوام. به خون قرانو پیغمبرا بر چی میگفتن ما اصلکم علیه من اجر پول میخوایم ما پیغمبران پول اگه تو مخ فوکه اینا چه بونه هر کسی دنبال پوله این بابا چی برات میماسه اومده اینجا می یه زبد قوم نو نل مرسلین قوم نو اصلا پیغمبری رو قبول نداشتن حالا یکی اومده گفته من پیغمبرم جالبیش دلیل مثلا ذاتمون نوح بر پیغمبری نمیخواد نمیگم معجزه بیار. می اینا همه چرت پرته خب الان نمیشنوید این حرفا رو میگن چی به این بابا میرسه به خاطر عزات نو میدونه تو مخ چیه به محض اینکه میاد اول میگه من پیغمبرم پولم نمیخوام بخونید سوره نو سوره هودو بخونید داستان عزات نو آورده قرآنو ب... بفهمید تعمق کنید تفکر کنی به چی رسید یا تقلقلون نباشم که قلقل قلقل قلقل قلقل برم چه بری جلو اوکی چرا قلقل میکنه قرآن چی میگه تو به ۲۴ میگهقول انکان ابناک آب اوکنم ابناکن خواان ازوا عاشراتکن وا اوناق اون طرفتمون ها تجارتتون تخشون و کتصاده ها و ساکنان طرزون ها ااحب الله و رسوله ای و جهاد فی سببیله فطرلب صحت تایاعتتی الله به امرره و الله الله حدل غمل فاسقی. میگه اگر اینها رو از خدا رسول و جهاد در راهگو بیشتر فاسقین یه فاسقی یه بار دیگه بگم اون چی بود اب آب باباتون. همش علاقه نگاه کنید همش بنده ابناؤكم پسراتونو اخوانكم ددوشاتونو ازواجكم همسرانتون اشیرتوكم فام فک فامیل فا... فا... و نژاد و اینا اموال تجارتون تجارتتون تا قشاونا کسادها اون تجارتی که میترسی سودش از است. بدی ای بابا اگه این کار بوشی که الان بابا فلان قیمت فلان چیز میاد پایین و میره بالا چه و مساکن اون طرز و خونه که دوستشون دارید رضایت دارید دونمسایی میگه اگه اینا رو خدا و پیغمبر جهات جهاد فاسقی فاسق اگه مومن باشید با همین آزمایش میشه. بعد خدا چی میگه میگه اه با خیلی هاشم ب... یعقوب بگید کسید خیلی هاشم میبخشم که این نعمات من و خرج من نمیکنید خرج امام زمانتون نمی کنید خرج مسیر کن. و عبودیت نمی اول قول لادید الاس تو براب بکن قالو بلا نامردی که دروغگویتم، کذابیت، منافقیت. خیلی هاشم میبخشم بلا سرتون نمیارم. اما برای اهل بیت و اولیاء الله مصیبت چیه؟ ترفیع درجه است. ترفیع درجه است. یکی از علما یک آخرین مقامی که انسان بهش میرسه رضایت هم. که هر اتفاقی که تو میراز ازیتو دید وقت قبول کنه همه چیز از هم سمت تو خیره. الخير ما وقع هر از دوست صد نکوش بعد ناراضیام بشه باشه عقلی ف... پذیرفتم تمام میگم آره اما عملی عمرن یکی از علما گفت خدا میخوام به مقام رضایت تو برسم میگه همینو که گفت بچه‌ش افته تو حوض خاص باشه دید نمیتونه باشه میگه بچه همجوری دست و پا میزد تو آب دست میومد بالا سر میرفت زیر آب داش خفه میشد میخواست باشه دید نمیتونه باشه فهمید غلط با کردم من نمیرسم تونس بلند رفت بچه‌رات اون خب میتونه خبه فرزندت بگذری؟ اگه من بخام من بخام میتونه از به فرزند بگذری؟ اواغ چه کرده؟ حالا میفهمم آشوره این چی؟ ببین قران چی گفت؟ آبا اوکم فرزند شهید ابنا اوکم قدر شهید اخوان اوکم برادر شهید ازواج اوکم بی بیسر و سامان میشن بعد از او به اسارت میبرن حرفهایی میشنوند نگاههایی رو میبینن که فرمود. مصیبت فقط شام. از, شام، از شام، از شام، از شام، سه بار تجار کرد. چقدر اموال زندگیش رو کرد. تجارت چی؟ تجارتش الهی بود. مساکر خونشی که ویل کرده اومده. نبا کن، میشه مستاق بارز میشه حسین ابن علی. بعد این میشه چی؟ وسیلهی برای ترفیع پس این نعمات خدا، برای بالا رفتن، برای رسیدن به خود و تو ما تظاهر می به حجاب. خود نعمت داره تظاهر به حجاب. یعنی گیر ماشین میشیم، گیر خونه میشیم، گیره بچه میشیم. برای اینکه دوست داره یه دقیقه حجاب رو میذاره کنار. یعنی چی؟ خونه رو میفرستیم بیرون، بچه‌رو میفرستیم بیرون، مریضی میگیرده. طرف میره جلو آینه وای میسته خوشت دهع داره میکنه، یه تار مو و میندازه اونور. عصب میکنه. یه مریزی میگه جم... به جمالت ناز، به طبی بنده به مالت نناز به شبی بنده به همین دیگه و ما اصابه کن به مموسیبه چه لفظی استفاده که خدا؟ بگید موسیبه آها یه اونه که حدف منده اصابه مموسیبه به ما کسابت عیدیه کن میگه این دقیقا همون کاری که خودتون کردید و نه من مصیبت سراغ کسی بگید نمیفرستم خودت کردی و یعفو کسی. خیلی یعفوان شوراسی. حالا ببینید چیه؟ پس ما برای ترفیه درجه مسیبت سراغمون نمیاد چون اقلقا گافت داریمون و بعد علاقمونو بزنیم کناد حالا این شاهکار حسین افنانی چه؟ این بود که می گفتم می ترسم بگم ببینم می گیرید یا نه و میتونم انتقال بدم یا نه؟ استش این دومیه شاهکار عبا عبدالله این بود گفت شما که برای ترفیه درجه که مسیبت نمیدید من برای ترفیه درجه رو به جان که بعد از من خیلی ها با همدردی با مصیبت من ابراز همدردی و همزاد پنداری در مصیبت من شریک بشند بی آن که پدر از دست دهند بی آن که فرزند از دست دهند بی آن که علیه اکبرشان اربن اربا شود بی آن که عباسشان به خاک خون بغتد بی آن که ناموسشان را در مقابل چشم نامهرمان ببرند چی شد؟ چه کرده حسین این اون رحمت الهی گفتم بابو الحسین بابو الرحمت اصلا خلقت حسین علیه رحمت این همین دیگه چه کرده گفت اون مصیبت مال من خدا اون مصیبت مال من خیلی تو در طول تاریخ خواستن بقاپنی مصیبت رو مصیبت عظیم مصیبت عظم مصابی بگی و جلت و عظمت رزیه چقدر عظیمه چقدر جلیل این رضیه این مصیبت، این داغ این سختی چقدر بزرگه خیلی دارین تو ربطه مام رضاست دیگه وقتی حضرت ابراهیم میخواد سر ببره اسمایلو خدا گفت باشه قبول کردم که میخوای این کار کنی اما نه مصیبت عظیم بگی چی عظیم میخواد قربانی عظیم میخواد و فده به زبحن عظیم زبهن عظیم این زیارت آشورا الفاظش قرآنی کامل که عقید استفادش برای اینگه کار آدم زاد نیم این انسان خدایه یا کار خداست زبه عظیم میخواد مصیبت بزرگه مسیحی یا یه حضرت عیسی به زور میگم به سلیب کشش، به زور به سلیب کشتش کشت. بینید چرا؟ شما میخواد همین حادثت رو وجود جبه بگن مسیح به سلیب کشیده شد و بگه چی؟ قربانی گناهانه؟ ما شد نه دارم میگن دیگه این چه حرفیه؟ نتونستن به این شیرینی که تو تشعیه وجود داره بفهمنش قلط هم دارم میگن ما اصلا بحثی که کردیمه چیز دیگه بودا نه که قربانی گناهانه ما بشه نه ابا عبدالله مسیبت ترفیعی رو به جان خرید که تو با همدردی با او بخشیده و به شبی برای همین شما بگید ببینم تو روایاتمون داریم و حتی قرآنی هم اثبات میشه از منابع اهل سنت اثبات میشه که کیا خودشون ابراز هم درده میکردن و عبابدالله پیام برای میگه جبریی روزه حسین رو برای آدم خوند علیه موسیقی برای نوح خوند برای ابراهیم خوند برای ابراهیم خوند میگفتن ما دوست داریم شد حضرت نظرش از حضرت نظرش نزرش شیه. وقتی روزشو خوند جبرئیل گفت من میخوام یه پسر به بدی این بدید. همین. میخوام خودم ها درد با رسول الله کنم. عین همون سرشو تو تشت طلا بذارم ببرن. و حضرت یهیو همین شد. و کاها یا عین ساد. سور مریم شروعش. همین کاف یا, کاف یا عین ساد. همین دیگه. چربلا. حلاکت. آتش، یزید. سب. اینا امام زمان این حروف رو از امام زمانی که کنار همچی خب یک پروفسور یهودی شیعه شده یک کتابی نوشته در اون اسحخی اسحخی یعنی درخت حیات در کتاب مقدس رو برداشته گفته سادش یعنی صادق نمیدنم چی اسم احلبی تو در آوردن توش اسحخی میمشم یا اشتباه کرده. درست سال ممکن اونم باشه او اصلا جالب بدونید با امامت مسلمان شد یعنی اول تو یهودیت پی برد که یهودیت دنبال یه مفهوم بوده زده جاده خاکی اون شناسایی کرد گشتید فقط در دنیا اسلام و از اصلا جایین نداره اونا شیعه شد روزنامه قدس روزنامه قدس سلسله مقالات ایشونو میزاش. هنوز هنوزم هست تو بخش قرآن و اطلعت بخش اینترنت داره دیگه سایت اینترنتشون برید قدس آل نای برید اونجا تو بخش قرآن و بزنید مقالات این پروفسور یهودی میاد اما می چی بود؟ اسحقایی اسم درخته ایمم نشان جمعه اسم ح خوب حالا من اینا هدیه به شما دادم. خ در زبان عبری به عربی که تلفظ میشه خیلی جا مثل ملخوت ملاکوت ملک زیاد داریم. خوخوام حکم خوخوام حاکم کسی که حکیمه. خکه به جای خکه بذارید؟ عین ساد ها که؟ یه یا عین صاد میگه درخت حیات اینه تو تورات. ساده شدید؟ خب اون که گفتم اون درخت حیات میینه، درخت؟ همون درختی که آدم می‌خواست بره به سمتش اون داستانو پیش اومد. و خدا نگهش داد. شجرت خلد. ها؟ خاطر برای همین حتی چیزی بهتون بگم این نقل آیت الله باقری ها. من پنج نمی نمی‌کردم تو من بین ری... قبول دارم ما گفتم این کوچلوری حرف زد آقا رسول الله هم بر امام حسین گریه میکنه برای تقرب به آستان خدا آقا امام سجاد هم اشویلخ برای ابو عبدالله برای چی برای برای اینکه برای اون بزرگوارا این مصیبت پیش یعنی همه با حسین شریک و حتی کی صبا و مساء صبح و شب بر تو ری ب دلب دو اداع به جای اش خون گریه میکنم. نه اینکه اشک هم تمام بشه خونگیریه کنم. اصلا از اول به جای اشت خون گریه میکنم. به اندازه ظرفت از این مصیبت از این بهرهبه ظرف تو چقدری می بری تو آشور ها. میفهمید کهبرش چکار میکنه. حالا وقتی ترفیع میده میشه رحمت وقتی مصیبت عزیمه رحمتتم میشه چی؟ عظیم میشه دیگه؟ مصیبت عظیم، رحمت عظیم، واسع، جلیل. ربایتش اینه دیگه عباراتی که توی چی داره میگه که بعد جلل و عظمت المصیبت. هم جلیل هم عظیمه مصیبت. در نقطه مقابلش اون هرچی می بتونی بری شریک بشی بیشتر میبری. یعنی ببین چه کرد موسین از این فداکاری بیشتر؟ گفت اینا موس... اگه این که نه، علی بخاطر این کاری که می کنه صبح تا مصیبت باشه. من به جان می‌خرم اینا ابراز همدردی کنن با من سر اینو نiyot خوره. اون مسیحیت همین مفهوم رو برداشت قله بی همه چیش اینجاست، همه چی اینجاست از دل من. تو ادامه این، تو همه ادامه ببین زيارتش چی میگه؟ بلا فاصله میرسه میگه یعنیو بلاقا مقام چی؟ یه فی مقامی هازا. یه مقام رسیدید. ممنتنال هومنگ سلواتون و رحمتون و مخفره. قفران اله اینجاست. بخشش اینجاست. میرسی به مخفره. بر همین آشون باید هر لحظه امامی تر شدید. چون یک فرصتی باز میشه. این فرصت تو ما نیست. این فرصت تو ما رمزونش نیست. مصیبت عظیمه در عوض بخشش عظیم. چه لطفی خدا کرد به شر با هدیه حسین وگرنه یعنی همه جهنم توی میگه یا همین دو به حق محمد یا آلی به حق علی یا فاطر و به حق فاطر یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین قدیم الاحسان قدیم, قدیم همین دویه احسان کرده از آدمش با حسین بخشفیده شد داریم دیگه فتلقا آدم من رب بهی کلمات اهل سنت که کتابه شنا بردن. که این همین نام پنجتن رو برد پنجامی رو که رسید اونا چارتای دیگر میگفت دلش شاد بشه پنجامی رو که گفت یهویی های گرفتش به جبریل گفت چی بود به من یاد دادیم اولین روزه رو خوند جبریل بر آدم خوند. زار زار عشق میره آدم باب عشق بر حسین شد. با ابراز همدردی در رو مست باید حضرت زکریا علیه السلام چه مقامی داره چقدر چی خواسته چی خواسته از این شبیه شدن به این مصیبت این شاهکاره عبدالحسین برونسی که یکی از بزرگان ماست من اعتقاد دارم اون نمی سوادی هم نداشته کارگر بوده تو مسجد اما نون حلال میخورد. برید رفیقاش می چی کردن کتاب همین خاک های نرم کوشک شن های نرم کوش برید بخونید تو اونجا چی میگه میگه که از رفیقاش میگه که من یه روز دیدم ج... بدن اینو دارم رو بران کار میارم، دیدم گلوش تیر خورده میگه خورده خون هیچیش نشده؟ می گفتم یاد این آدم افتادم می گفت افتاد یه روز میگم این آرزوی من چه؟ گفت من دوست دارم با خون گلن بنویسم یوزهر تو هم جنگ خود با خون گلن دوست دارم بنویسم یوزهر گفتم این کارو خودشه بالاخره که خدامیش داد میگه گفتم این از کجا پیداش کردید گفتن <تصفح> مثلا پا اون سنگه می بلند شد اومدم دیدم بله سنگ با قرمز با خون نوشته شده یوزهر یعنی می‌خواست شبیه بشه می‌خواست شبیه بشه حضرت علی اکبر خواست شبیه پدرش. نه پدر، امامش. خواست ایربن رؤس هر کسی پیش نیامد. خواست او شاهکار هستیه چه می‌فهمیم ما؟ حضرت علی اکبر چی بود؟ می‌دنید دیگه قول معروف اینه این سلامه که توی زیارت عاشورا می‌گید سلام علی حسین و علی ابن الحسین این امام سجاد نیستین؟ حضرت علی اکبره. حضرت علی چه می‌نیه 300 بار تو سلام های زیادتاش رو شما سلام بگید شما میگه سلام علا حسین چی؟ علی ابن حسین میشه، اولاد الحسین هست اصحاب الحسین بازم هست 300 بار سلام به ایشون داده میشه. شعن ایشون درد نشده اینقدر مقربه جسمی مقربه در زمین اشبه ها ناس خلقم و خلقم من فکر فکره علا چیه؟ نمیگه شبیه چهره خلقم خلقت خلقا لان انك الا عظیم آیه قرانه میگه تو خلق عظیم خلقا و منطقا اصلا که منطقش منطق پیغمبر میگن چه یعنی رسول الله قدو حضرت بگیم من این برداشت میشه دیگه وقتی سر مبارک رو میبردن اینو بهتون بگم سر مبارک رو میبردن امام حسین رو بارها تو مواتن کسی به تو جاهای مختلف وقتی امام حسین رو میدیدن کوب می‌کردن مردو میگفتن پیغمبر یعنی خود ابو عبدالله شبیه بود به ازت رسول شبیه بود خیلی شهرتان شد ما داریم که از زهرا وقتی امام حسین در گهواره بود گهوارهشو تکون میداد قربون صدقش میرفت میگفت قربونت برم شهرتان به به جدت رفتی یعنی این این سمت مایی مثلا مثلا میگن توی خانواده میگم به مادرش رفتی به پدرش گفت جدل رفتی امام حسین میگیم ما هر موقع دلمون تنگ میشد ولی اکبر میگفتین بیا بدید اینجا با اینا رو گفتم من میخواستم بیشتر وقت بذارم برای عزت علی گفتم با دونه دونه شخصتوی کربلا میگم این راه چی بوده دوست تاشون رو میخواهم بگم امشب عزت علی اکبر رو میگم فرداشم هم انشاءالله حضرت عباس تا بینیم شب آخرم چی رزقامون میشه بعد از این فراز شما میگی بلا فاصله چی میگی اللهم مجعل مهیای گفتم یادتون باشه به دنیا والآخره تهشم رسیدی به همین. یعنی تسبیتش کردی. بعد اون موقع چی شده؟ شده شعبه ای از امامت. نور تو در تو هم هست. به موازات اون. بعد یعنی ما امام شده؟ نه اون که ببینی یوبلغن المقام المحمود اگه فکر کردی میشی امام تبخون اما نوری از اون تو دلت میتابه. نوری از اون تو دلت میتابه. این ارزش داره. دو. همه زندگی من محیا محمد یعنی چه همه زندگیم خرج پیغمبر و آل محمد و تمام مماتم هم خرجشون شد چی دارم غیر از حیات و ممات حالا بیایم رو بسنجیم پدر خدا وکی دیم خدا وکی دیم هلاون روزم قاضی کنیم چقدمون 24 ساعت زندگیمون مالمون اولادمون نام نامنس و نیم چرا این بلا سرمون میاد چرا اینجوری شده و یافو ام کسی خیلیشو بخشید اگه قرار بود که هر روز بعد بعد وقت میجوشه اگه کافر بودی نه اصلا بعضی از کفار هم میره چیکار میکنه دیگه خدا تو این دنیا عذابش نمیکنه چون عذاب تو این دنیا بشی کفاره اگه تو این دنیا باشه سبکه هرچی بر اون ورتا سخت میشه دیگه خب میگه حیفه اینا بذار اون ور درست حسابی این دوریش میده هر روز اون رو پول رو پول میاد ايش ميده اون بدبختا سننت استدراج تدریجا میبردشه محلت بهش میده که بیشتر گناه کنه اون روزی که دیگه چی خدا به یکی دشمن شد خدا به یکی دشمن شد لقب جهنمی ها اون دنیا اگه مقصر یه چیزی مثلا اینجا بگم علی آقا من نفر برگردن اما میگم آقا همه برمیگردن وجه اشتراک اینجاست وجه اشتراک جهنمی ها یا ادو وللاه یعنی یا ادو وللا همشون برمیگردن وجه اشتراک یعنی صفت اشتراکی یا ولی الله هست. وقتی میگه همه برمیگردن نگم قرار همه ولی الله بشین اشحدو انه علیهن ولی الله شدانه امیر امیرالمؤمنین و ابناه المعصومین حجج الله قرار شبیه بشیم ریز بریز همونتو حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی به میدان میره یه بار میره به میدان خوب گوش بکنید میره به میدان یه رزم عجیب قریبی میکنه. میگه از میمنه میزد به میسره سپاه. عجیب می جنگیده حضرت عقیق برد. خب حتی ما داریم که میگن شب قبلش با حضرت عباس نشسته بودن داشتن با هم میگفتن میخندیدن که فردا چیکار کنیم اینا رو. امام حسن فاصله انداخت به نشون. اون شما با هم یه جا باشید به کاری میکنید. فاصله انداخت. وقتیش سی هزار نفر ل حضرت علی گفتن طوس زد گفت این بود یزید میگفت فلش کردن داشتم می‌فرستادم شجاعت رزمندگی نترسی یه جای امام امام محسن تو مسیر وقت داشتم یادم یه جا رو اسب یه خواب کوچیکی رفت رو اسبم چه که نشسته بود آروم یه خواب یه خواب یه سواری اومده بهش گفت بهش امام حسین گفت این سپاس، این کاروان کاروان مرکز حضرت بیدار شد گفت ان و ان الیه راجع الحمدلله لله رب العالمين ان لله وان الله راجعون الحمد لله رب العالمين بعد سوم بارم تشکر کرد حضرت علی اکبر از خوف چی شده گفت همچه خوبید گفت مگه ما بر حق نیستیم نگ گفت ما بر حقیم نه. گفت مگه ما بر حق نیستیم گفت چرا کوچه‌با کن ما نترس بودن اصلا بنی هاشم معروف بوده نترسین تو جنگا از بنی هاشم همهشون حساب می‌بردن خب اینجری میخندید وقتی گفت اینا همین سی ازا همی سی ازا نفر رو بوده مثلا. اینجوری بود یعنی اینا مبالغه نیست دار رزمنده بودن این خاندان امیر اصلا معروف بود دیگه استاد رزمه خاندان امیر الممننه. حضرت علی یکپا رکاب حضرت عباس و امام حسین و امام حسن اینو رزمنده یا آیات گرفتن برید ببین امیرالمومنین چی میفهمه در باب رزمنه میگه اگه یه روزی بین دست و پات گیر کردی که کدومو بدی یعنی دشمن شمکی رو زده میگه دستتو میخواد بزنی میگه پاتم بیاری جلو حضرت چی میگه میگه دستتو بده چون اگه پاتو بدی شما دست بدون پا به درد نمیخوره ها شما یه پاتو زاناتو ببند یه مشت نمیتونی بزنی چون تکیگاه نداری دوم زمین گیر میشی پاتو بزنی زمین حضرت عباس چیکار کرده دست داده، پا نداده میخواد بره اصلا این اصلا عین مو به مو فرامین جهادی و رزمندگی و اون فنون نظامی داره اجرام کنه. رفت رو اجرا میکنه حضرت علی که وقتی میگن 120 نفر تو مرح... تو اول زد حالا بگیم مثلا 120 نفر رو تخمینا صد خیلیه خیلیه به اون ابزار اون موقع میگه میزد به دل دشمن میشکاپه یعنی در میرفتن وقتی بعد جالبه خودشون چون جوری معرفه میکنه اونجا اونا گفتن یا حسین با تو چیکار داریم بغزن لعبیک با علی مشکل داریم وقتی هم خودشون رجزش بارتون میخونم وقتی رجز خون فکر چی گفت ازران انل علی یبن حسین ابن علی گفت علی مشکل داریم به من علیم پدر بزرگم هم, هم علیه. چی میشون اصلا کسایی که اسمشون علی بود اینا بتر زدن. و گزینه نسبت به مولا امیرالمومنین که اینا داشت. گفتا نترس، من براتون میخونم، ترجمه اش خیلی زیباشه. مختار یکی از اینا رو که گرفت آورد. مختار یه کار روزگوشکن خوبی بوده. میگفت چه کردید؟ اول تعریف کن. بعد گریہ میکرد خودش. گریہ میکرد وقتی واسه تعریف میکرد. در مورد حضرت علی گفتن بعد جوری عاشق مختار. اون بابا تعریف کرد. گفت علی چی میخواست به میدان بیاد؟ تنها کسی بود که ما دیدیم حسین دنبالش را می اومد. دنبالش را می آمد دل بیشنه خیلی سخت و ما دیدیم حسین دنبالش را می را بلند بلند نفرین میکنه ما رو ما رو نفرین داریم که عبادلوف هم خدا لعنتتون کنید چه, چه کار دارید میکنید اگه بفهمید دارید چیو میخواید بکشید یعنی سختش بود خیلی سخت بود برای ابوالفضل مجره علی اکبر علیه السلام بحث علی اکبر خیلی پیچیده تر از این مباحثه تا جایی که می‌دونید دیگه عده می‌گفتن امام از امام حسین چیه علی اکبر به خودم علی اکبر رو ویژه می‌زنن که مطمئن باشن امامت رو قطع پسر بزرگه عموم اسات می‌گه حضرت علی اکبر پسر بزرگی است علی اوصط امام سجاد علی اصغرم که این از علیا نگذاشتن ابن زیاد تایمان سجاده میده میگه تو کی میگه علی ابن رسولی میگه ما که علی ابن کشتیم که یعنی آمار داره که بعد علی کشته کشتشن خوب دقت کنید این نکته تحلیلی تاریخی نگاه کنید رفت به میدان برگشت اصلا رجز حضرت عوض میشه رجزش عوض میشه من رجز رو پیلین تیرفتم از انترنت براتون میخونم خیلی عجیبی اینو در سید ابن تابوس نقل میکنه میگه کان علی ابن حسین علی... علیه ماسلام یعنی بر هر دو تاشین هم بر علی و حسین درود باد من به ناس وجهن و احسان هم خلقن میگه درخشند وجه بود و خوش اخلاق بود و اسبحه یعنی صفت تفصیلی دیگه یعنی از همه بیشتر میگه سم من نظر الیه میگه حسین اینجوری نظر الیه بهش نگاه کرد نظر آیس آیس از میگه یک نگاه کرد علی مید این اولین بنی هاشم دیگه اولین فرزند خود ابو عبدالله از بنی هاشم اولین نفره میره که حرفی توش نواشه گرفته چه اولین نفر میره ورح علیه السلام اینه میگه با چشاش دنبالش میکرد همینطور داشت میرفت و همینطور عشق میرفت بعضی میگن که محاسن شریفش رو گرفت و برقی میگن انگوشتش رو به سمت آسمان گرفت اللهم مشحد خدا شاهد باشه الا هؤلاء القوم بر این قوم شاهد باش فقط برز علیهم غلامون اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقن به رسول الله که من شبیه ترین جوانان خلقا خلقا و منطقن به رسول الله فرستادم کن نازد اشتقنا وقتی ما مشتاق می شدیم الا نبی یک میخواستیم نبی مشتاق شد دلمون تنگ می شد برای رسول الله به پیامبر تو نظر الهواجه و به اون نگاه میکنیم به او او رو دارم میفرستم رفت می این رجز خون انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی ما قسم به خانه خدا اولا هستیم به نبی به پیانبر شما مسلمانین من شبث و شمرن دنی از اون شبث شبث ربن ربعی و اون شمر دنی و دون از ربكم به سیف حتی ینسنی اینقدر با شمشیرم میزنم تا شمشیرم طاب برداره اینقدر ازتون میکشم تا شمشیرم تاب برداره زرب غلام هاشمی این این ضربت یک جوان هاشمی علویه ولا لا ازال الیوم احمد این روز تمانشه من از پدرم حمایت خواهمتیم فکر نکن تنوش میذارم تلاح لا یحکم و ابن الدعی و اصلا به خدا فرزند زن بدکاره نمیتونه بر ما خوش میشه اینجا ساری رو جاری کنه حیاد من نظر بگه ما حرف رو گوش میکنیم رف به میدون. برمیگرده میاد به بر آقا عبدالله میگه اتش قد اتش داره منو میکشه چیکار میکنه عبدالله اون مسه اینجاست حضرت عبدالله بغلش میکنه سینه به سینهش میچسمانه زبان مبارکش رو در میاره زبان خوش در دهانش میذاره میذاره اون میبوسه میمک زبان عبا عبدالله ببین جان کندن دل کندن از امام زمان سخته ها زبان رو در دهانش میذاره اون میمکه سینه به سینه آقا رسول الله هنگام جان دادن چه می‌کنه؟ امیرالمومنین صدا میکنه سینه رو سینه امیرالمومن می‌ذاره، فشار میده، جون میده. یعنی ببین اون لمسه، اون لمسه این آدمی بعد برمیگرده اونجا رجز، چه جوری بود؟ رجز کلا نواز میشه. اصلا مت خدا من به چیزی رسیدم از خدا یا حضرت اصلا میفهمی کن فیکون شد، اذنو گرفت از امامش. اذنو گرفت. بعد میره حضرت عباس هم یه چی میگه که از آقا صدری سین هم داره که نمیتونم دیگه تحمل کنم ببینید اینا با امامان، با امامان خیلی قشنگه. بعد میره او. او عباس اونجوری میشه هر تکه عباس تو یکی ده طرف دهش نمید یه دستش یه جا رفته کفل عباس الیمین کفل یه سا دست چپ اون طرف بدن یه طرف و حضرت علی به میدان میره و 80 نفر دیگر رو میکشه وقتی ضربت میخوره خیلی اتفاقات یه شمشیر میزنن به, به فرق مبارکش عین جدش علی ابن ابی طالب میام علی خون میاد روی صورتش میریزه روی صورت رو چشمای مبارکش سرش که رفته پایین اس میره به سمت دشمن نمیبینه میره وسط دشمن این چو همینطور اس بود این هروم لقمه ها جرئت نمیکردن بیان جلاله فراهم شده بود هر چی رسید به هر کیلیسی ديچه علی اکبر علیه السلام این معیار بارز اشوازی با امام و خداست امام اینجا اصلاً باید علی اکبر بشه ما بفهم امام این چیه به خدا بفهم بابا امام چه کارایی داره بعد علی اکبر ببینی ببینید که چه جوری ممسوس و در ذات خدا میشه اشوازی میکنه و میره او خواسته که تک تک بشه شک نکنید خواصه خواصه که اول ضربت بعد به فرقش بخوره خواسته چون میدونست اون هرون لغمه ها بغض علی به دل داره. خودشو به نام علی معرفی کرد. اللهم عجل لولی الفرج والافیات و النعس من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدای. خدای تو رو به حق علی اکبر امام حسین ما را علی اکبری بمیران. اللهم اجعل محیا و محیا محمد و آل محمد و ممات ممات محمد و آل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه اللهم ارزقنا توفیق الشهاده في سبيل مولانا صاحب الزمان اللهم ارزقنا شفاءه الحسين يا مولاي و قدم الصدق عندك يا ابو و اصحاب الحسين الذين بذلوا مجاهدون دون الحسين عليه السلام سلاتنا.